دار و سلطنه غزوین به نظر فخر زمان ده مخروبه آمد که خاک مرده بران پاشیدند گزرگاه ها خراب و گلالود دکان ها خالی و بی مشتری خانه ها تبله کرده و کثیف آبرین، ابوس و مندرس این غزوینی که پس از سالها میدید کمتر شباهتی کم تر شباهتی از کودکی از این شهر به خاطر سپرده بود نداشت آنچه او از غزوین بچگیش در ذهن داشت درختان چنار و افراق صد سالهی بود که در دو طرف خیابان سر به آسمان برده بود و جویبارهایی که شبان روز این درختها را مشروب می کرد و آب گوارایی که از قنات خمارتاش می روشید و خانه های اشرافی بزرگان غزوین باغ درندشت سردار مفخم و کلاه فرنگی سالار معتمد و صندوقهای انگور شاهانی و گردش شبانه مردم در چهار باغ و دکانهای پروپیمان با که زیر حسیران یا برگ چناران نگهداری میشد و در آویش گیر و نقالان قسط سرا و گذر کاربانها و تاخت سوارکاران از این همه خبری نبود و این همه را برای شاهزاده گفت و پرسید به چشم بچگی من این شهر جلال داشته؟ یا حقیقتاً جلالی در کار بوده و حالا اینطور ویران شده. شاهزاده با خندهی تل گفت مملکت سراسر ویرانه از سراسر حسی به فکر عمران نیست از ابنی شهرها محافظت نمیشه حکام میان و میرن و به فکر پر کردن انبانه خودشونن. چرا باد بذارن اینجا که دروازه وطن ما به اروپه و محل تردد مسافرین به سفرهای اجنبیه به این روز بیفتدن؟ چنین شهری با چنین موقعیتی که در فرنگ یا جرمنی بود مثل جواهر مثل تخم چشم ازش نگهداری میشد؟ می شود. با چنین تاریخی این پایتخت که ببین به چه روز گاری افتادی؟ و با تأسف و دل افسردگی و اطرافش نگاه کرد و ادامه داد، اینجا فخرجان نه فقط دروازه خاک و آبی ما به اوروپه مرکز تجارت با عثمانی و بغداد هم است عجب آو عجب آو که کسی به فکر نیست این آب و هوای خوش این خاک زرخیز فخر زمان با خنده صحبت شوهر قعد کرد و بوست خاکش و آبش بسیار خوب مردمش چطور همه میگن و برای چند لحظه صدای خندش بالاتر رفت و بعد از چه حکایته که برمان ساختن شاهزاده دست زنش را در دست گرفت و گفت تو از این خاکی محسن خان از این خاک بود به فرنگ که برسیم با چند نفری که از همین خاک آشنا میشو میبینی که فرزند خلف از این خاک کم نیست از شاهزادهای فتلیشاگان در اینجا هنوز چند تا ای هستن نواده های قاغان مغفور اولاد علی نقی میرزا هم های دور من راستیش این فرمان فرمانفرما خونه عدلت مملکت وارد شده مثل اینکه سپهدار تونی کاونی منزل سردار مفخم راوی سنی نبوده شازده خندید گفت نه تصور نمیکنم اگه میل داشته باشیم ما میتونیم با خونه یکی از همین اربابان بریم تا راه به انزلی باز بشه من شخصا در ذهن میدم در مهمانخانه منزل کنیم ولی میل میل تو فخر زمان گفت ای کاش اصلا مجبور نبودیم در قزوین توقف کنیم ولی حالا که ناچاریم بدم نمیاد مهمانخانه رو دوباره ببینم ببینم واقعا اونجا همون قصر دوران بچگی من یا نه اون وقتا که به بارگاه شاههان میمونید شاهزده پاس قشنگ بود با اون اسبای خراسونی چاپارکونش که والا لایق استبل سلاتین بود وقت زمان ته دل مشتاق بازدیدن باقش آساد سردار مفخم هم بود میل داشت به دانه تنوزم بوته های سنگین از خوشه های گل مربارید برجاست یا نه یا آن درخت فندق تنومند که نزدیک سردر خانه بود یا آن شمشات های پاکوتا که در خاشه باغچه ها قراول میستاد یا آن گلهای کوکب که هر کدام به درشتی بشخابی بود و آن رازقی هایی که عطرش تمام حجم محتابی وسیع خانه را می باش یا آن درخت های پایین باغ که او فقط از دور دیده بود و به چشمش جنگلی انبوه بود یا آن گرم خانه شیشه ای که درختان استوایی و گلهای سعلب داشت و در چهار فست سار خیار و هندوانه و انگور و آن قلامان و کنیزان و آن بیاو و برو و آن ریخت و پاش در کودکی در این باغ دانه های گل ملوارید را نخ کرده بود از آن دستند و گوشوار ساخته بود و گلبرگ‌های های شمدانی و نستران را برای بزک به لب و ناخون چسبنده بود و کفش دوزها را به خاطر رنگ نارنجی و خال سیاهشان گل و گیاهی متحرک تصور کرده بود شاید در راه بازگشت از سفر دیدار دوباره میسر شود، تا چه پیش آید به هر حال شک نبود که هم او و هم شوهرش در مهمانخانه راحت تر خواهند بود. به علاوه دوستان شاهزاده آزادانه تر در مهمانخانه به سراغش خواهند آمد. شاهزاده گفت مهمانخانه در سراسر ممالک محروسه نظیر نداره، یا حداقل کم نزیره. چابارخونه هم هنوز به راهه، ولی بیشتر اسبای خراسونی رو، از یه طرف مستبدین از یه طرف مجاهدین زیر پا گرفتند در صورت که راه چندین روز بسته بمونه چپارها هستن که ما از دنیا و مافیها ها بی خبر نمونیم در معابر چنان آبی از بارانهای سیلاسا به راه بود که برای عبود، کرجی و قایق وسائلی مناسبتر از اسب و بود ولی شاهزاده و فخر زمان ناگزیر تا مهمانخانه را با درش گرفتند وقتی به خیابان رسیدند فخر زمان با شعف ملاحظه کرد که هنوز چتر تعدادی از درختان کهن چنار و افراه بر آن گستر است و بنای مهمانخانه در انتهای خیابان کم و بیش همان ساختمان سعد وسلطنهای است که او در یاد دارد با ستونها و تاغیهایی دورادور و باغ ورودی پرگل در روز سوم اقامت شاهزاده و فخر زمان در غزین راه شوسه تعمیر و باز شد و این دو آماده ای ادامه سفر به رشت و انزلی شدند در هشتی مهمنخانه، مسافرین اهل اروپ و امریک به دور چند میز گرد آمده بودند بعضی همراه مشایعین ایرانی بعضی در جمع اهل و عیال خود بعضی از تهران رسیده با آزم فرنگ بعضی از راه رسیده و آزم تهران میزها و صندلی دیگر هم تقریبا همه اشغال بود قزاق روسی که نیمی از زخم زشت روی چانش از کنار دستمالی سیاه نمایان بود، همراه زنی شنگ، رفتار و زیبا بر سر یکی دیگر از میزها نشسته بود. بر دور میزی در نزدیکی میز قزداخ چند ایرانی جمع بودند و از اوضاع وطن می گفتن. اگه کاشان یه نایب حسین داره، قزین حبیب خان و عزیزخان جلیلوند رو داره که همه داحتشو دارن می چپن. همه این مطالب و برز نایب سلطنه رسوند. کی ناصرون مورد فرنگ میرسه به غزمی؟ جان از دست ناصرون مورد چی ساخته است؟ مولا حبیب تو کاشون نشسته میگه اون قطع و تریخ نایب کاشی مروج اسلام به حامی دین و به سالار اسلام رغب داده یا اون مولا قربانالی که داد رسول میلیون رو در اردگیر شقی شقه کردن گفت شرعن ریختن خونش حلاله صحبت ها آقا خب. اول با دست اینا رو از کار کوتاه کرد تکلیف رو با این فرامین تکبیر و جهاد یکسره کرد بنده موافقم از انجمن در استانبول هم پیغام رسیده که به سید عبدالله حالی کنید منبر و مسجد مال تو میدان سیاست مال ما آجان. خیل جانم مسائل مهمتر زیناست، با در درجه از نایب سلطنه خواست جلوی خرابکاری های ممدلی میرزای مخلوع رو بگیره، شاه سلطنه و سالار دوره سر جاشون منشونه، یه فایه به دار کشتن شیخ فضل الله اونم به دست یک ارمنی عاقبت نداره، خواهید دید، مردم مسلمان شیعه اصناعش رکی هست، نیست این کارا؟ اوف ها میفرماید میفرمایید یه پرم که برای وطن سربازی کرده، جانبازی کرده از شیخ نوری که تحت حمایت اجانب رفته، جانب حکومت مستبد در رو گرفته کمتر بر این آب و خاک حق داره، حاج جعفر میفرمایید یه باره بفرمایید جنابالیان فقط متجمیات احکام شرعی، آ پاچا دنبال مشروط هستید آقا مشروعه که، ها بنده که ای صحبت از مشروعه کردم عزیزم، چرا حرف تو من میذارید. تاریخ انقلاب کبیر رو مطالعه بفرمایید مفید قربان در اونجا تکلیف رو با سلطان و اسقف اعظم در آن واحد روشن کردم اگر نه همون کاسه بود و همون آش خب شازدم رسید بفرماید قربان بفرمید اینجا بفرمید اینجا قربان ببینیم نظر حضرت عالی چیه ما با دوستان به توافق نمیرسیم همگی از جا برخواستند تا فخر زمان و شاهزاده هم در کنارشان نشستند و صحبتها ادامه یافت و همه بر گرد و احوال زمان بود تلگراف هایی که به ممالک و دول دیگر فرستاده شده بیرون رفتن گروهی از سالدادها از قزوین بازگشت قریب الوقوع نایب اسلطنه از فرنگستان ماجرای التیماتم روس آه این التیماتم مداخلی سریح در کار حکومت مشروطه است به بپذیریم که استقلالمون رفته جانم دیگه کدوم استقلال باید فاتحه رو خوند آخه برادر من عزیز من با کدوم زور بازو با کدوم قشون و لشکر مگه میشه با روزها جوال رفت و میفرمایید اولتیماتون رو رد کنیم حرف زدن سهله باید میدان عمل رو مد نظر داشت پس یک باری سیاست باری به هر جهت پیش کنیم آقا. دست روی دست بذاریم خاک و به باد فنا بدیم خیر بنده همچی عرضی نکردم بنده که مثل بعضیا بوجار لنجا نیستم آقا جان عرضم اینه که خاک وطن در جنگ بیساز و برگ به بادر فرامیره نه در مذاکره غرضم اینه که آخه بخلول و ساد لو هم که نباید بود رفیقش رفیق روزها که به این سادگی ها دست نمی کشن که چند صد سالدات رو محص خیر مقدم به ناصر مرد از اینجا تخلیه میکنن. بله ولی بقیه که تشویش دارن کجا برن از اینجا بکنن؟ و با سر زن و غذاق را که بر سر میز پهلویی بودن نشان داد و صدا را آهسته کرد و گفت این زیبا سنمو که ملاحظه می فرمایی چازد جان؟ اهل قفغازی. دل دلداده این خراشیده بد عیبت شده میگن چهل هزار منات داده تا این لندهور هور و عقد و نگاه درش بره. اگه با روسا بشه جنگید با کار دل نشت. لیلی رو باید از چه چشم من جنوندی اما راجب به موک بنده ارز کنم که او حرف حساب میزنه میگه یا من نایب السلطنه سلطنه استبدادی هم که از شما نظره میخوام یا نه نایب السلطنه سلطنه مشروطه که دخالت در امور رو ندارم. نایب السلطنه سلطنه استبدادی هم نمیخوام با شما با جان حالا چه میفرمان پس چه باید کرد؟ صاحب بمونه؟ آقا کشور مشروطه باید از خودش کشون منظم داشته باشه تا دست دولت این فقیم و بهیر از مملکت پوتاک کنه باید دارو شورا و مجلس مغننه داشته باشه تا قوانین باجبل اجرا بشه آجان من باید دارو متعدد داشته باشه که اهاد مردم جاهل و وامانده نباشند این دارو کمبریج رو برید ملاحظه کنید مفیده باید سلام از شد حضرت نباب بالا رسیدن تان به خیر قدمتان روی چشم خیلی خوش آمدید تا شهازاد سر برگردان ملا صالح را دید که دست به سینه کنارش ایستاده است و گفت احبال ملا صالح بفرمو سر اون میز من علام میرسم و رو به دوستان کرد و گفت من وقتی از تهران را می افتادم، قصد توقف در غزین رو که نداشتم. تصور میکردم فرصت دیدار کوتاه خواهد بود. از دولت سر راهبندانی چند روزی در خدمت بودیم، مختصر درد دلی کردیم. هرچه فایده. به هر حال بگذریم. فعلا من و خانم مأموری راجع به قضیه خانوادگی با این آشیه خرف بزنیم. بعدم البته ما دیگه آزمیم. دوستان با شوخی و خنده از فیض دیدار شاهزاده صار خوشوقتی کردند، وعده نوشتن مکتوب و فرستادن خبر به هم دادند، خدانه نگهدار و سفر بی خطر رد و بدل کردند و از مهمانخانه خارج شدند. فخر زمان و شاهزاده هم به سراغ ملا صالح رفتند. ملا صالح با حیرت به میزها و صندلیها و زنان اروپایی دور اطرافش نگاه می کرد و در نشستن مردد بود. در تمام طول عمر قدم به مهمان خانه که زیر گوشش بود نگذاشته بود و حالا به نظرش میآمد که به دنیای دیگری وارد شده است که فرسنگ ها از دار و سلطنه به دور است. شاهزاده که متوجه تعلل ملا ساله بود گفت چرا نمیشین ملا بهش بشین گلوی تر کن حرف بزن. گویا خانم با سلطنه کاری به شما رورو کرده و منتظر نتیجه است. مادر خانم منو معمور کرده از شما خبرها رو بگیرم و به ایشون، ابلاغ کنم کجای کاری آغا در زم تلگراف من به شما رسید ملا به مناسبت دیدار شاهزاده عباو و امامه دیگری بر تن و سر داشت که کمتر چرک و چربی بر آن ناسیده بود با احتیاط نوک صندلی نشست و تصویهش را طوری با دو دست گرفت که گویی برای حفظ تعادلش حیاتی است در جواب شاهزاده گفت آه بله یقین رسیده است که خدمت رسیدم همی باید حالا رفته باشم اما راه میان رستم آباد و رودبار بالکل با سیر رفته است نمیشه رفت نه فخر زمان از جزئیات صحبت مناظسرطنه با ملا صالح خبر داشت نه آنچه میدانستند این بود که عروس در رفتن به تهران تأخیر دارد و دلیل این تأخیر هم نامعلوم است و مأمور بودند از ملا صالح بخواهند هم دلیل را ارائه دهد هم عروس را روانه کند فخر زمان به تصور اینکه ملا صالح از موضوع دیگری سخن میگوید پرسید کجا نمیشه رفت ملا نگاهی به فخر زمان کرد و رو به شاهزاده جواب داد خب رودبار دیه شاهزاده سوال کرد رودبار ملا ساله گفت گفت از نخوان سکینخانمینا به رودبارند برای زیتون چینی منم جخ آزم بودم که آسمان سوراخ شد به مثال لوله آفتاب ازش آب آمد. نه یه رو نه دو رو همطور آمد. کارا البته همه شده از خانش و آینه و شمدان همه در بند منزل فقط مانده از یه خود بخوندن که انشالله به امید خدا در رودبار به خانم منزده بفرمایین تا که ملا ساله آب بالش بوده است زمین گذاشته از پی فرمان شما رفته است ولیکن پاسخته ای شده است و ایلا کار تا بلکل تمام بود بلکل پخر زمان گفت راها مرمت شده ملا ساله از امروز دیگه بازه ما انزلی را انز شازده از طرف شما چه پیغامی به ترون بفرسته شاهزاده ساعتش را از جیب جلیقهاش بیرون آورد و نگاهی به وقت کرد برای آنکه گرفتار هشف و زواید گفتار ملا صالح نشود پیشنهاد داد خبر بفرستم که شما عازم باغ زیتون سکین خانم هستید در رودبار برای خاتمه مذاکرات بله ملا صالح که بعد از شروع ریزش باران تا گرفتن تلگراف شاهزاده در خانه تپیده بود و از باز شدن راه خبر نداشت همان آن تصمیم گرفت که بدون وقفه از همانجا به طرف رودبار برود و به شاهزاده جواب آی بله البته درست است حضرت بالا به خانم بفرماید تا آنکه بند زیر سایه شما عازمم به رودبار شاهزاده و فخرزمان از جا بلند شدند و ملا صالح که تا آن وقت پاهایش را از زمین بالا گرفته بود با نیمه جستی برخواست و به عنوان خداحافظی و امید گرفتن توشی سفر با شاهزاده مسافه کرد و دستلافی را که شاهزاده در آستین عبایش گذاشت به خرمدان پرشال منتقل ساخت و راه افتاد وقتی ملا صالح به رستمآباد رسید کاروانی که به سمت رش میرفت و استاد و فخر زمان هم از جمله مسافرانش بودند از او پیش افتاد در راه دسته های ده نفره و پانزده نفره سالدات روس سوار بر اسب و تفنگ بر دوش به فواصل از کنارش میگذشتند و به راه خود میرفتند ملا سالح با خرکچی پیری همراه بود اهل مازندران که پای صحبت نبود به پرگویی و کلکل های ملا سالح با نیم قرش و کخکخ خلت سینه جواب میداد ولی به هر تقدیر داشتن همسفر ولو خرکچی بد اونق به از تنها را سپردن بود خصوصا در این دهای ناعمد که میبر دوزدان چپابلگر شده بود به علاوه ملا سالح عادت داشت متکلم به وحده باشد و غالبا مستمع میطلبید نه صحبت شب را ملا سالح با خرکچی در قهوه خانه صبح کرد نان و گوشت و پیازی خودش خورد و کاهجویی به اولاغش رساند و با دمیدن سپیده سحر باز راه افتاد رودبار هنوز تا کمرکش در گلولای بود دیوارهای کاهگلی اینجا وانجا سرهم خوابیده بود و تل آجر و خشت در شهر بیش از خانه و کلبه دیده میشد. از یکی دو منزل صدای نوه و زج بلند بود ملا ساله که در دروازه رودبار از خرکچه مازندرانی جدا شده بود اولاغش را کنار یکی از خانه ها به بوتهای بست و کوبه در را کوبید و از مرد جوانی که در را باز کرد سراغ خانواده سکینه خانم را گرفت مرد او را به طرف کاروانسرایی که بعد از تقا خانه و روبروی آبنبار و جنب دکان تنباک فروشی بود راهنمایی کرد و در را بست ملا صالح از اینکه عزاداران از, از او نخواستند که داخل شود و به بخواند و چایی بنوشد و نفسی تازه کند بیدماغ شد خیر از دنیا رفته است اما چه غم گرچه خطی از سقاخانه و آبانبار و تنباک و فروشی بر افق نبود مقصد نزدیک بود می میتوانست در خانه سکین خانم گرد راه هستند بتکاند و با پلوی چربی زیر شالش را غرس کند ملا صالح افسار خر را رها کرد تا به غریزه آب و آبادانی را بیابد تاریکی زود بر شهر افتاد و آسمان باز سر باریدن داشت که ملا صالح به دروازه کاروانسرا رسید. بیشتر حجرهای دور تادر سن خاموش بود. ملا صالح سرش را به شیشه بخار گرفته یکی از پنجرهای روشن چسباند و از دیدن پسرهای سکین خانم که گرد منقلی پر آتش جمع بودند، گل از گرش گفت و داخل حجرش شد.